ساقی حدیث سر و گل و لاله می روید وین بس با سلاسه قساله می روید میده که نوع عروس چمن حد حوث نیافت کار این زمان ز سنعت دلاله می روید شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می روید تیه مکان ببین و زمان در سلوک شیع که این یک شبه ره یک ساله می روید تیه مکان ببین و زمان در سلوک شیع که طفل یک شبه ره یک ساله می روید آن چشم جاد و عابد فریب بین کشکاروان سهر زدن باله می رود از رحمه رو به اشوه دنیا که این عجوز مکاره می نشیند و محتاله می رود باد بهار می وزد از گلستان شاه و از جاله باد در قده حلاله می رود حافظ شوق مجلس سلطان قیاس دین قافل مشود که کار تو از ناله می روید